قبول کردن نسارا مکر وزیر را صد هزاران مرد ترسا سوی او اندکندک جمع شد در کوگ او او بیان میکرد با ایشان به سر انگلیون و زنار و نماز او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس قول کوچه میزد می زد ز نهان در عبادت ها و در اخلاص جان فضل طاعت را نجستندی از او ای به ظاهر را به جستندی که کو مو به مو و زر زر مکر نفس می چون گل از کرفس موش کافان صحابه هم همدران و از ایشان خیره گشتندی به جان آز